الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مجمعين أما بعد درجة لسيقوز با عنایت به آیاتی از سوره مبارکه مدثر صحبت این به میان آمد که روز قیامت یک روز سختی است فاذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير و گفتیم که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 أو في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال أو ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه متفق عليه این حدیث رو امام بخاری و امام مسلم هر دو روایت فرمودن در یعنی در بالاترین درجه صحت هست متفق علیه السیدنا عبد الرحمن ابن صخر مشهور به ابی حریره اسم سیدنا ابی حریره عبد الرحمن ابن صخر بوده از رسول صلی الله علیه و سلم روایت فرموده که ایشان فرمودن هفت گروه هستند که الله آنها را سایه می فرماید زیر سایه قرار میدهد آنها را در روزی که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 خیلی شاهکار نیست مثلا فرض بکنید در پیری آدم شهوترانی نکنه خیلی کار شاهکاری نکرده برای اینکه قوه علاقمندی و شهوات او فروکش کرده در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار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 اگر ابزارش هم داشت جهان رو به هم میریخت بلی آدمی ثروتمند باشد تکبر بکند تکبر از او مضموم هست او را نابود میکند لیکن این طور او را ذلیل و خار نمیکند که الله روز قیامت حتی به او حرف هم نزند ولی بله فقیر متکبر دیگه غیر قابل تحمله حالا پیرمرد باشد باز هم به سمت فساد برود امام عادل امام حاکم کسی است که زور و قدرت و ارتش در اختیار اوست میتونه بکوشه میتونه ببنده میتونه محصور بکنه میتونه پیگرد داشته باشه ظلم بکنه کم بکنه زیاد بکنه لکن عدالت میکنه در حالی که قدرت این کار را دارد نمیکند یعنی کار او خیلی ارزشمنده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 در عبادت الله رشد میکنه شاب شابون فی عبادت الله جوانی که رشد میکند کند همینطور تن او پرورده می شود و جا می گیرد سلول بدن اود تکمیل میشود در حالی که دارد بندگی الله میکند این گروه دو از جمله هفت گروه از گروه دوم اون سه نفر هم فراموش نکنیم ممکنه است هان بعضی ها طالب بشود که اون سه نفری که الله به اونها انایت نمیکنه چه کسانی یعنی یکی فقیر متکبر دوم فرمود مدمن الخمر یعنی کسی که دائم با مشروب سرکار دارد مدمن الخمر ممکن هست در زندگی یک کسی یک وقتی در شرایطی قرار بگیره شیطان بر او غالب بشه یک باری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 وسوسه می شود انسان بعضی جوانها ها فکر میکنن که جوان پاک مشکلاتی که این آقا داره اون نداره بارها ما به این اشاره کردیم این مطلب این رو باید همه اصلاح کنن ازهان خود را تمام آن چیزی که تو علاقه پیدا میکنی به سمت آن اون یکی جوانی که خود را نگاه میدارد هم علاقه دارد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 علاقه دارد برود به سمت اون کار بد لکن خلاف دل خودش عمل میکنه. کنه الکیس مندان نفسه یعنی نفس خودش رو زیر پا گذارد و عمیل لما بعد الموت و برای بعد از مرگ کار می کند آدم عاجز است که اطبع نفسه هواها دنبال هوای نفس خودش میره الله رسول صلی الله علیه و زمانی که مشکلات بر او فشار می آورد کان اذا فزعه امر بادر الى الصلاه وقتی که فشار می آمد کاری رنج به او میداد به سمت نماز رفت حالا جوان ما کار میکنه اذا فزعه امرا بادر الى الخمر بادر الى المخدرات مسلمان راهش اینه فشار بر او بیاد بره مشروب بخوره فشار بر او بیاد ب... بیاد بره سیگار بکشه بره مخدرات مصرف بکنه بره قرص بخوره بهادر ایل الصلاه فشار می ب... فشار آمد قرآن بخوان فشار آمد برو مسجد فشار آمد برو نماز بخوان شب و نشعه فی عبادت الله. جوانی که در عبادت اللہ رشد بکنه همینطور که داره بزرگ و پرورده تر می شود ایام روزگارش به عبادت الله میگذرد. این مرد انایت ویشه الله سبحانه و تعالی قرار می کنه و رجل قلبه معلق بالمساجد و مردی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 لکن قلب او قلب خود را داخل مسجد می‌گذارد چه قدر تمثیل کشانگیس و هر بار به سمت قلب خود برمی‌گردد و محل قلب خود دلش با مسجد آبیخته است محلی که مسجد نداره دلتنگش می‌کنه جایی که اذان نمی‌شنود او را غمگین می‌کند مردی که مرتب با مسجد در ارتباط هست روز قیامت تحت الحمایی الله سبحانه وتعالی است و رجولان تحب فی الله و دو شخصی که این حالا مرد داریم میگیم خوهران هم دارن گوش میدن بسیاری از این موارد شاید همشو بخواهیم بگیم حالا بحث امام عادل در اسلام البته امامت کبرا برای زن قرار داده نشده و رسول صلی علیه و وسلم فرمود لن یفلح قوم ولا امرهم امراتون مردمی رستگار نخواهند شد که سرپرستی عام و امامت کبرای آنها به دست زن بیفته هر کسی بهرکاری آفریده شده و بدترین نوع ناشکری و ناسپاسی میدونید چیه اینه که آدمی راضی به محوریتی که الله سبحانه وتعالی برای او قرار داده نباشه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 منباب باب غالبیت گفته شده رجل باشد یا امرأه باشد رجلانی تحبا فی الله یعنی دو نفری که دو شخصی که همدیگر را دوست بدارند به خاطر الله دوستیشان برای ترس و برای طمع نباشد چون دوستی ها بر این دو چیز میچرخد آدم ها همدیگر را دوست دارند یا ارتباط با همدیگر می گیرند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 الاسلام قطع ما قبله اسلام قبل از خودش رو قطع می‌کنه یعنی تو اصلا دیگه تازه متولد شدی کسی حساب نمیکنه که تو قبلا چه بودی رجولان تحبه فی الله دو مردی دو شخصی دو مسلمانی که همدیگر را دوست داشته باشند به خاطر الله در حدیث صحیح آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود روز قیامت الله سبحانه وتعالی صدا می زند و می‌فرماید این المتحابون فیا کجا هستند کسانی که به خاطر من همدیگر را دوست داشتند به خاطر من هم دیگر را دوست داشتن, داشتن؟ رجولان تحبا الله اجتمع عليه و عليه. علیه با همدیگر دیگر جمع میشن به خاطر الله از هم دیگر دور میشن به خاطر الله اینها زیر سایه الله سبحانه و تعالی هستن و رجلن دعته امرأتون و مردی که زنی او را به سوی خود بخواند برای خلاف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 او میگوید من از الله می ترسم من از الله می ترسم امروز جوانها امروز ای که ما داخلش زندگی می کنیم به روال عادی و معمولیش چنین حالی داره بنابراین جوانانی که خودشون رو نگه دارند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 ما تنفق و يمينو. تا جایی که دست چپش خبر نمی شود که دست راستش چه داد یعنی اوج سردیت تصدق به صدقتین فأخوا مخفی میکنه. حتی لا تعلم شماله ما تنفق و يمينو. دست دست چپشم خبردار نمی شود. نه اینکه یک صدقی داده یک کاری کرده گوش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 برای اینکه این فرض و این واجب در جامعه پیدا بشه معلوم بشه که زکات دارن میدن مسلمانها و دیگری هم ترغیب بشه برد. زکات سنت و صدقی سنت سریتش بهتر است سردن و علانیا الله سبحانه و هر دو آورده در قرآن و آخری و رجل ذکر الله خالیا و شخصی که یاد الله میکند در تنهایی ففادت عیناه پس چشمان او عشق میریزند در تنهایی یاد الله میکند و چشمان او عشق میریزند که عبادت تنهایی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 یعنی یک ایار خاصی به ایمان انسان میدهد پیش خودت بین خودت و الله فکر کن ببین اعمال سری و مخفی تو چطور هست شان نزول آیات سوره مدثر آیاتی که قرار بود در این جلسه بخوانیم. شان نزولش رو بخوانیم و خود آیه رو واگوزار میکنیم به جلسه بعد ان شاء الله شان نزول آیاتی که میخوایم بخوانیم در رابطه با ولید ابن مغیره هست. بذاریم برای جلسه باد. شاید که دوستان خسته شده باشند. موفق و پیروز باشید. هادیا و سلام علیکم و رحمة الله و بركاته.